نظر تاریخی فردا رو میگن تا سو روز نهم نه تسع آشورا دهم ده تا همه جا صحبت اول فضل علیه السلامه چی شده وقتی که عبدالله رو از روز دوم محرم در سرزمین کربلا محاصره کردن روز سوم عمر سعد آمد و در طبق دستوری که ابن زیاد داد این آرو رو در محاصره بگیرن از روز هفتم آب رو بستن حلقه معاصره تنگ تر شد ابن زیاد نگران بود همون گونه که قرائن نشون میده داره یه مقدار تحت تأثیر امام حسین قرار میگیره نکنه عمر سعدم تحت تأثیر قرار بگیره و سختگیری رو شدید نکنه یک خشنتر، یک خبیستر، یک تمتر از نظر برخوردی شمر نزل زلجوشن رو انتخاب کرد با یه عده دیگری از لشکریان و یک نامه تندی خطاب به عمر سعد گفت برو کربلا این نامه رو به عمر سعد نشون بده بگو زود کار حسین رو یک می میکنی یا نه وگرنه تو برو کنار فرماندهی لشکر با من شمر نزل زلجوشن است و من رسیدم چه خواهم کرد روز نهم فردا شمرب نزل جوشن با اون اده خاصش وارد کربلا شده امام حسین علیه السلام مختصر چور تیزده بودن ظاهرا سر به قبضه شمشیر تکیه داده نه این کارا کاملا خابیده باشن روزم بود در همین حالت ولولهی در بیرون خیمه ها در گرفت زینب سلام الله علیه ها اومد تو خیمه امام حسین داداش گرگون شده امام حسین سر بلند کردن خو در این حالت چورتگونهی که به من دست داد جدم رو در خواب دیدم پیغمبر خدا با پدرم علی مرتزا با مادرم فاطمه زهرا با برادرم امام مجتبا مشغول آماده کردن مکانی جهت پذیرایی من بودن یعنی به تعبیری همه بهشتیان الان مشغول خدمتند همه ملکوتیان دست به سینه ایستادند همه برجستگان عالم وجود در اون عالم نور منتظرند نور ما از وارد اون مرحله شود زینب سلام الله علیها گریه کردند و بیتاوی امام حسین تسلی دادن بعد فرمودند خواهرم عباس را صدا بزن علمدار حسین قهرمان حسین صدایی مکتب امام حسین علیه السلام اول صدا زدن امام حسین علیه السلام فرمود عباس جانم برو ببین این سر صدا چیه و چی میگن؟ اول علیه السلام اومد شمره نامر رو نشون داد من اومدم یا حسین بیعت کند یا نه همین امروز ما کارو یکسره یک سره میکنیم اول فرمود سب کن من برگردم اومد خدمت امام حسین قضیه رو عرض کرد امام حسین فرمود به اینها بگیدیه امشب به ما مهلت بدن عصر تاسوه یه امشب به ما مهلت بدن ما نماز نمازو خیلی دوست داریم قرانو خیلی دوست داریم میخایم عبادت کنیم راز و نیاز کنیم اول فض علیه السلام برگشتن و فرمودن برادرم میفرماید امشب رو به ما مهلت بدید فردا روز آشورا از صبح هر کاری میخواید بکنید انجام بدید اول گفتن مهلت نمیدیم بعد بعضی ها از خودشون معترض شدن نه آقا یه شب مهلت دادن که مسئله ای نیست اما نکته مهم در اینجاست بعد از این که این مهلت را ابلفض علیه السلام گرفت و اومد به ابی عبدالله فرمود امشب کاری با ما ندارن حالا برنامه های فردا شب چه بود رسیدم فردا شب اگر خدا خواست ارز کنم اینجا سیه وقت صدای شمر بلند شد عباس با شما کار دارم ابلفض علیه السلام جواب نداد مادر ابلفض علیه السلام جناب فاطمه ام البنین از قبیله بنی کلاب است شمر هم از اون قبیله است عرب یه به قبیله و نجاد داره وقتی از کوفه حرکت میکرد از ابن زیاد برای ابل و سه برادر دیگرش که این چار پسر از امبلبنین هر تا در کربلا شهید شدند و ابالفضل علیه السلامم بزرگی که سی و چهار ساله ستای دیگه کوچکتر از ابلفضلند حضرت یکی یکی اینا را اول فرستاد قربانی امام حسین کرد و این جمله رم فرمود شما اول برید شهید بشید من داغ شما را ببینم مصیبت بیشتری رو در دفاعی از امام حسین تحمل کرده باشم با این مردانگی به آمد شمر اول و سه برادر دیگرش رو که از مادر ام ملبنین بودن به اسم صدا زد من از کوفه که داشتم می اومدم از ابن زیاد برای شما اما نامه گرفتم که شما در امانید به شرط اینکه از حسین جدا بشید این امان نامم آوردم شما از حسین دست بردارید هیچ که حق نداره به شماها تعدی کنه شما از این صحرا جدا بشید این سحنه کسب نار یا کسب نور برای عالم دیگر خوب دقت بفرمایید ارجعو برایکم برگردید به آخر ببینید تو دنیا چه کار کردید یه لحظه زبانم بریده باد که حتی این فرض را راجع به قمر بنی هاشم علیه السلام و سلام میکنم اما در مقام بحث ای ندارم بر فرض نعوز بالله اون لحظه اول فرض علیه السلام فریب دنیا میخورد باش من در امانم ما از اینجا رفتیم در سی و چهار سالش بود هفتاد سال دیگه هم زندگی میکرد میشد صد و چهار سال برده بود ما از ابلفض علیه السلام یا با این کیفیت بدسرین حالت ناری را برای خودش فراهم کرده بود اما ابلفض علیه السلام اون چنان شفتن و فرمودن خبیس لین بی من عباس در امانم حسین پسر پیغمبر در امان نیست ای مرگ بر این زندگی و ننگ بر این امان نامه که من جان خودم رو حفظ کنم ولی پسر پیغمبر رو در خطر بیاندازم لذا روز تاسوعا به خاطر این مردانگی اولپس علیه السلام که آقا ادعا خیلی راحت هستا انسان تو بزنگاه های حساس زندگی قرار بگیرد، اونجا معلوم میشه که چیه و در چه مرحله ایه، این کربلا و این آشورا تیکه تیکش درس انسانیت و آزادگی و توجب عالم معناست برای کسانی که میخواهند درس فرا بگیرند،